افثانه ها نمودار بخش مهمی از میراث فرهنگی هر قوم و ملتی محسوب شد افثانه ها پرداخته نیروی تجسم انسانند که به دلیل ویجهی پیدایش یافته و برای هدف شناختی به کار گرفته شدند هر قومی افسانههایی هایی داره هماهنگ و متناسب با آرزوها باورها و به طور کلی برخواست از گذشته های اون قوم در اکتشافات شناسی مصر کتابخونه های پیدا شده که قدمت اونها به دو هزار سال قبل از میلاد میرسه در این کتاب ها علاوه بر مطالب مختلف علمی و تاریخی قصه ها و افسانه های زیادی به چشم میکره که در عین زیبایی و سادگی ما رو با آداب و رسوم، اندیشه، اعتقادات و به کلی فرهنگ مردم مصر بیشتر آشنا میکنه در این فرصت افثانه ای رو از سرزمین مصر که یکی از کوهندترین تمدن هاست براتون اجرا کنم به نام دادخواهی مرد کشاورز به قلم مارگریت دیون ترجمه ی اردشیر نیکپور با بازنبیسی خانم زینت صالحپور که امیدواریم لذت ببرید روزگاری در دشت نمک در حوالی سرزمین گرم و خشک مصر مرد کشاورزی با زن و فرزندانش زندگی میکرد مرد که تنها ناناور بود کالاهای دشت نمک را به شهر میبرد و اونا رو با گندم و ارزن مبادله میکرد روزی مرد کشاورز رو به همسرش کرد و گفت بنبار قلی برو و هرچه هست پیمانه کن زن به انبار قله رفت و چیزی نگذش که سراسیمه به نزه همسرش بازگشت و گفت این مرد فقط هشت به غله قله باقی مونده و بعد با نگرانی اضافی کرد این مقدار خیلی کمه به زودی تموم میشه اون وقت مرد کلام همسرش رو قطع کرد و اونو به آرامش دعوت کرد و گفت نگران نباش من همین فردا به مصر میرم تا با فروش کالاها سرمایهی به دست بیارم زود بر میگردم زن که کمی دلش خرس شده بود برای یک توشه ی همسرش چند قرص نون پخت و مرد هم لوازم سفرش رو آماده کرد شب بر پهنای دشت نمک جا مرد اون روز مرد کشاورز خورجینهای های اولاغشو از نی، چرم، نمک و تخم آفتاب گردون پر کرد و به طرف سرزمین مصر براف افتاد حوالی زور مرد کشاورز خسته و گرسنه به کنار رود نیل رسید و لحظهی به استراحت برد در کنار رود نیل مرد کوتاه‌قامتی که با چشمای درشت و صورتی گرد ایستاده بود و به مرد کشاورز و علاغاش که زیر بار سنگین کالاها کمر خم کرده بودن چشم دوخته بود مرد کوتاه‌قامت که از دیدن اون همه کالا به هیجان آمده بود با حسرت آهی کشید و زیر لب گفت ای کاش ای کاش منم اندازه این مرد کالا داشتم و بعد با حرص و تمک گفت باید تموم کالا هاشو از چنگش بیرون بیارم با گفتن این حرف فکری به مدز مرد کوتاه آمد خطور کرد با سرعت به طرف خونش که در کنار جاده تنگ و باریکی بود برافتاد این جاده تنگ و باریک تنها گذرگاه در اون حوالی بود که یه طرفش گندمزار بود و در طرف دیگهش خاکریز قرار داشت و اما بشنوید از مرد کشاورس مرد کشاورس بعد از اینکه خستگیش در رفت دوباره به راه افتاد و به جاده تنگ و باریک نزدیک شد مرد تا آمد که از دور منتظر اومدن مرد کشاورز بود با دیدن اون فرصت رو قنیمت شمرد و قطعه پاچی کتونی رو که از قبل برای منظور خاصی آماده کرده بود به سرتاسر سر, سر جاده تنگ و باریک کشید و خودش در گوشهی به کمین نشست در همین موقع مرد کشاورز و علاقاش که زیر سنگینی بار به سختی حرکت میکردن به ابتدای جاده تنگ و باریک بسیدند با اولین قدم این که اولاغهای مرد کشاورز به جلو پرداشتن مرد کوتاه‌قامت قد راست کرد و فریاد زد: "آی مادر! مواظب باش شلاقات پارچه کتون منو که برای خود شدن پن کردن لگد کوب نکنن. مواظب باش!" مرد کشاورز در حالی که از پن بودن پارچه کتون در وسط جاده تعجب کرده بود خطاب به مرد کوتاه‌قامت گفت: "تو باید بدونی که پن کردن پارچه توی ای که همگانیه و به همه مردم تعلق داره، کار درستی نیست مرد کتا آمد با سراحت پاسخ داد این کار هیچ ربطی به تو نداره بعد مکس کتایی کرد و پرسید تو با این چه چجوری میخوای از اینجا رد بشی؟ ها مردی مرد کشاورس لبخندی زد و پاسخ داد <تصفيق> نترس من طوری رد میشم که هیچ صدمی به پارچه کتون تو وارد نشه نترس بعد اول به ردیف پشت سر همدیگه قرار داد و اونا رو به طرف گندمزار کنار جاده تنگ و باریک روند باعث عصبانیت مرد کتا خامد شد و فریاد زد ای داری چی کار میکنی؟ مگه گندمزار من جاده است که اول به اون طرف حرکت بدی ها؟ مرد کشاورز با عصبانیت جواب داد آخه من باید از کجا رد بشم؟ این طرف جاده گندمزاره اون طرفشم خاکریزه وسط جاده رو هم تو پارچه کتون پنگ کردی پس من چیکار کار کنم؟ مرد کتا خامد شونه‌هاش رو با بی‌احتنایی بالا انداخت و جوابی نداد. مرد کشاورز سر در گم ایستاده بود. یه دفعه علاقی که پیشا پیش دیگر اولاغ ها بود کمی جلو رفت و خوشه‌ای گندم سبز از کنار گندمزار کند و به دهنگ گرفت. مرد کوتاق آمد که گویی منتظر چنین بهانه‌ای بود با خشم و عصبانیت فریاد زد: "آهای! بچم! چرا مواظب علاقت نیستی؟" بعد تهدیدکنان جلو اومد و گفت حالا چه اینطور شد من این الاغ رو برای جبران خسارتی که به من زدیم میگیرم و در کار شخل زدن از اون استفاده میکنم مرد کشاورز که انتظار شنیدن چنین حرفی رو نداشت به مرد کوتاه آمد گفت من توی جاده عمومی راه میرم ای که متعلق به همه مردمه من برای نشدیندن توهینه تو مجبور شدم سر اولاغامو برگردونم و حالا تو به خاطر یه گندم سبز میخوای اولاغ منو برای خودت نگردنی؟ مرد کوتاه آمد بر سر مرد کشاورز فریاد کشید سکت باش خشم و کینه تمام وجود مرد کشاورز رو فرا گرفت تا نیاورد و صداشو بلند کرد من؟ من از دست تو؟ به کارگزار بزرگ کاخ آن شکایت میکنم کنم تو نمیتونی در ملک اون به من زل کنی کار اون بیرون اوندن دوزداب و گردنگیرهایی مثل تو. مرد کوتاه آمد که خون به شقیقه هاش دویده بود با عصبانیت شاخی درختی رو برید و به طرف مرد کشاورز حمله کرد و اونو زیر ضربات پیاپی گرفت مرد کشاورز بیچاره از شدت درد آه و ناله می و به خود میپیچید. مرد کتاق آمد از زدن بازی استاد و اولاغهای مرد کشاورز رو به حیات خونش برد و بعد در رو مکم پشت سر خودش بست مرد کشاورز از ستمی که به اون روا شده بود سخت عصبانی بود و مدام فریاد میزد زود باش زود باش اول منو پس بده وگرنه همه جا آب تو رو میبرم زود باش مرد کتاه آمد از پشت در خونش تهدید کنن گفت اگه یه بار دیگه صداتو بلند کنی چونان بلایی به سرت بیارم که تمام مردم مصر به حال روزت زار زار گریه کنن کشاورز بیچاره که دید حریف مرد کتا نمیشه آروم شد و آجزانه گفت من اونقدر پشت این در میمونم تا بالاخره بیرون بیای. و بعد با عصبانیت مشت محکمی به در خونه مرد کتا خامد و دوباره آروم شد گذشت و مرد کشاورز همچنان پشت در خونه مرد کوتاه قامت به انتظار نشست اما مرد کوتاه قامت از خونش بیرون نیومد که نیومد روز پنجم کشاورز به شر رفت تا از ستمی که بر او روا شده به کارگزار ارشد فرعون شکایت کنه مرد کشاورز ساعتی بعد به نزدیکی کاخ کارگزار ارشد رسید کارگزار ارشد کاخ فرعون به همراه خدمتگذاران دیگه در حال خارج شدن از کاخ بود. مرد مرزکشاورس با سراسیمگی جلو رفت و با احترام تعظیم کرد و گفت: "قربان، اجازه بدین درد دلم رو برای شما بگم." کارگزار ارشد که برای رفتن عجله داشت گفت: ای مرد من باید برای بازرسی به جایی برم ولی تو میتونی درد دلت رو به یکی از زیر دستان مورد اعتماد من بگی و اون سر فرصت برای من بازگو کنه مرد کشاورز با نومیدی سکوت کرد و کارگزار ارشد فرعون یکی از زیر دستانش رو به اون نشون داد و گفت هرچه میخوای به اون مرد بگو. و خودش با عجله از مرد کشاورز فاصله گرفت و ازش دور شد خدمت گذار مرد کشاورز رو به خونش برد و مرد کشاورز از ستمی که مرد کوتاه‌قامت بر او روا داشت خدمتگزار رو آگاه کرد و بعد هم به آرومی از خونه خدمتگذار بیرون قدای اون روز خدمتگزار تمام گفتههای مرد کشاورز رو برای خدمتگزار ارشد کاخ فرعون بازگو کرد خدمتگزار ارشد رو کرد به خدمتگزار زیردست خودش و پرسید تو مرد كوتاه خامتی رو که به این مرد کشاورز ستم کرده میشناسی خدمتگزار زیردست سری تیخون داد و گفت البته قربان اون اون پسر یکی از رعایای جناب فرعونه و بعد با تردید ادامه داد قربان جسارت بنده رو ببخشید ولی ولی شاید این مرد کشاورز داستان سرایی میکنه و غصد آزار و عذیت پسر رعیت جناب فرعون رو داره کارگزار ارشد چیزی نگفت و به فکر فرو رفت خدمتگزار زیر دست که سکوت خدمتگزار ارشد رو دید ادامه داد اربان از کجا معلومی که این مرد کشاورز ساغه به اصلی این همه کالا باشه؟ کارگزار ارشد همچنان در فکر فرو رفته بود و گویی حرفهای خدمتگزار زیر دست خودش را نمیشنی و وما مرد کشاورز مرد کشاورز که دید خبری از خدمتگزار ارشد فرون نشد خودش شخصا به حضور اون رسید و با صدایی رساو و فساحت کلام تمام ماجرا رو برای کارگزار ارشد تکرار کرد و بعد با صدایی که رگاه های خواهش و تمنا در اون پیدا بود اضافه کرد اربان شما در مقام بالایی قرار دارین وظیفه شماست که که مراقب رفتار و اموال مردم باشین پس فرمان بدید تا تمام اموالم رو از اون مرد ظالم پس بگیرن و به من باز بازگردونن کارگزار ارشد که از شیوه بیان مرد کشاورز به شگفت اومده بود متفکرانه نگاهی به اون انداخت و از مرد کشاورز خواست برای قضاوت درست چند روزی به اون مهلت بده مرد کشاورز هم با خوشحالی پذیرفت و از حضور کارگزار ارشد مرخص شد کارگزار ارشد فرعون هرچه بیشتر فکر میکرد کمتر به نتیجه میرسید. و بناچار به حضور فرعون رفت و تمام ماجرا رو برای اون بازگو کرد بعد با هیجان گفت سرورم این مرد کشاورز بیشک یکی از بهترین سخنوران دنیا من یقین دارم که حضرت عالی از شنیدن سخنان شیوای این مرد کشاورز لذت خواهید برد فرعون رو کرد به کارگزار ارشد و گفت دوست من اگه میخوای منو از خودت خوشنود کنی رسیدگی به کار این مرد رو به تأخیر بنداز میخوام بدونم این مرد تا چه مدتی در اثبات ادعای خودش پافشاری کنه و دست از شکایت برنمیداره و بعد از کارگزار ارشد خواست تا تمام گفته های مرد کشاورز رو نوشته و زد کنه و برای اون بیارن و تحکیل کرد مرد کشاورز نباید متوجه چیزی بشه از همون ساعت فرمان فرعون مو به مو به اجرا در اومد و همه چیز به خوبی پیش می تا اینکه که مرد کشاورز که, که از تخیر در رسیدگی به کارش خسته و نومید شده بود دوباره به نزد کارگزار ارشد اومد و باز هم زبان به شکایت باز کرد که ای سرور من نگذار در قلم رو تو کسی را قارت کنن اگه عدالت از راه خودش منحرف بشه و میزان ترازو غلط باشه اون وقت روستایان دست به دزدی میزنند و نگاه بانان گناه کاران رو توقیف نمیکنند و بدی و بلا مثل توقیان رود نیل همه جا رو فرا می گیره کارگزار عرشد کلام مرد کشاورز رو قطع کرد و پرسید آیا؟ کار اون مرد کوتاه قامت اونقدر در تو اثر کرده که خواهان مجازاتش هستی؟ مرد کشاورز با حاضر جوابی پاسخ داد وقتی کسی وظیفه داره مردم رو بر عایت و احترام به قانون وادار کنه، دزدی کنه، پس چه کسی از هر و جلوگیری کنه؟ کارگزار ارشد جوابی نداشت تا به مرد کشاورز بده و فقط به دهان مرد کشاورز خیل مونده مرد کشاور سری تکونداد و گفت صبر کن صبر کن شاید یه روزی هم ظالمی از راه برسه و دار و ندار تو رو غارت کنه اون وقت درد مردم میفهمی و بعد با لحن تلخ ادامه داد اگه به فکر مردم نیستی حداقل به فکر خودت باش کارگزار ارشد سرش رو به زیر انداخت و شروع به قدم زدن در سالن کاخ کرد در این میون خدمتگذاری که در پس پرده پنهان شده بود تمام گفتها و حرفهای مرد کشاورز رو مو به مو بر روی پاپیروس یادداشت کرد و مرد کشاورز که از این کار بی اطلاع بود در حالی که دهنش از سخنرانی زیاد کف کرده بود کارگزار ارشد فرعون رو به پرنده شکاری بزرگی تشبیح کرد که پرندگان کوچیک رو میبله خدمتگزار ارشده کاخ فرعون که از تشبیه مرد کشاورز به شدت ناراحت و عصبانی شده بود دستور داد تا مرد کشاورز رو به ضرب تازیانه ساکت کنن اما مرد کشاورز همچنان در زیر ضربات تازیانه لبس شکایت نمیوست و کارگزار ارشد رو به بیعدالتی محکوم میکرد کارگزار ارشد فرعون که از این توهین سخت شفته شده بود دستور داد مرد کشاورز رو از کاخ بیرون بندازند ولی طولی نکشید که مرد کشاورز به داخل کاخ برگشت و دوباره لب به شکایت باز کرد و این بار هم خدمتگزاران اینقدر اون رو کتک زدن تا نیمه جان از کاخ فرعون بیرون ره. روز دیگه گذشت کارگزار ارشد که دیگه از این وضعیت خسته شده بود و در ضمن متوجه شده بود که حق با مرد کشاورز دستور داد تا مرد کشاورز را به نزدش بیارند خدمتگذاران به سراغ مرد کشاورز رفتند ولی مرد کشاورز که میترسید تو خونه کارگزار ارشد با تازیانه ازش پذیرایی کنن حاضر به رفتن نشد و اصرار و اجبار خدمتگذاران هم راه به جایی نبرد که نبرد. به کارگزار ارشد فرعون خود شخصا به دیدار مرد کشاورز رفت و با خوشرویی گفت: دوست من، خوشحال میشم دعوت منو بپذیری و چند روزی رو در خونه من مهمان باشی. و بعد ادامه داد: خدا کنه تا دارم نان تو رو بخورم و آب تو رو بنوشم. و اونقدر با احترام با مرد کشاورز برخورد کرد که مرد کشاورز راضی شد همراه اون به کاخ فرعون بره مرد کشاورز چند روزی مهمان کارگزار ارشد بود و در این مدت به بهترین نف ازش پذیرایی شد و چند روز بعد کارگزار ارشد و مرد کشاورز به اتفاق به حضور فرعون رسیدند ابتدا کارگزار ارشد با احترام جلو رفت و گفت سرورم این همون مرد کشاورزیه که سکوت کرد فرعون خطاب به مرد کشاورز که در پشت سر کارگزار ارشد ایستاده بود گفت جلوتر بیا نترس بیا جلوتر کشاورز آهسته و نرم چند قدم به جلو برداشت به فرعون تعظیم کرد و دوباره به عقب برگشت کارگزار ارشد از مرد کشاورز خواست تا خلاصه از اون چی که در این مدت بهش گفته برای فرعون هم تکرار کنه مرد کشاورز هم با صدایی محکم و رسا با همون کلام شیوا و نافذش لب به سخن باز کرد و همه چیز رو برای فرعون تکرار کرد فرعون که گفته های مرد کشاورز به دلش سخت نشسته بود رو به کارگزار ارشد کرد و گفت این مرد کشاورز بیان شیوا و دلشین داره بعد به مرد کشاورز گفت ای مرد آیا حاضری در کاخ من بمانی و سخنگوی من باشی مرد کشاورز که نمیتونست دوری از زن و فرزندش رو تحمل کنه این پیشنهاد فرعون رو نپذیرفت و تاکید کرد که حق و اونو از مرد کوتاه کوتاخامت بگیرن تا اون زودتر به شهرش برگرده فرعون رو به کارگزار کرد و گفت رضاوت در باری این مرد با خود توست فقط سعی کن هیچ نکته ابهامی باقی نمونه آرگزار ارشد به کرسی قضاوت نشست و رأی خودش را صادر کرد و به منشی دادگاه دستور داد تا خود رو قرائت کنه طبق حکم دادگاه به مرد کشاوز شش قلام مقدار زیادی گندم و اصل و تعدادی علاق و چیزهای دیگر بخشیده می شود. و بعد به دستور فرعون مرد کوتاه خامت رو هم حاضر کرده تا در مقابل چشمان مرد کشاورز به فلک ببندند و تمامی اموالی رو که از مرد کشاورز برده بود پس گرفته و به کشاورز بدن مرد کشاورز با خوشحالی اموالش رو جمع کرد و به نزد زن و فرزندش که در انتظارش بودند به طرف دشت نمک فرکرد شنیدید افسانه که دادخواهی مرد کشاورز بود از سرزمین کهن و باستان مصر همطوری که در این افسانه شنیدید روابط انسان‌ها و روش برخوردی اونها با هم به زبانی ساده و روان بیان شد و از این رو که میگن افسانه‌ها تفسیرگر احساسات عمیق انسانی هن و در بطن خودشون ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع مختلف رو بیان میکنن این برمه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح پور. اجرا مهران دوستی صدابردار حسین اولیاوش و تیگه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود